سوره تقاون من <تصفيق> الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم يسدح لله ما في السماوات و ما في الأرض له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر به الله که بخشاگنده و با رحمت است آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است تسبیحگوی خداوند است فرمان روایی از آن اوست ستایش از آن اوست و او بر هر کاری تواناست او کسی است که شما را خلق کرد آنچنان که کافر از شماست و مؤمن نیز از شماست بدانید که خداوند نسبت به عملکردتان بیناست آسمان ها و زمین را، به حق خلق کرد و به زیباترین وجهی شما را صورت گرین نمود و سرانجام محمدان رسوب اوست. سبحان, الله سبحان, الله سبحان الله نسبت به آنچه در آسمان ها و زمین است عالم است از آنچه نهان می‌دارید و یا آشکارش می‌نمایید آگاه است و خداوند و آنچه در سینه ها می گذرد داناست آیا سرگذشت کسانی که پیش از این به حقایق کافر شدند به شما نرسیده است؟ آنها دستاورد بد کارهایشان را چشیدند و برای آنها عذابی دردناک است این بدان خاطر است که پیامبرانشان با دلایل روشن به سراغشان آمدند اما آنها گفتند آیا بشری می ما را هدایت کند؟ پس کفر ورزیدند و از حق روی برگرداندند. حالان که خداوند بینیاز است. زیرا او توانگر و در خور ستایش است. کافران پنداشتند که هرگز دوباره زنده نخواهند شد. بگو آری، به پروردگارم قسم همه شما دوباره زنده برانگیخته خواهید شد و از عمل اطلاع خواهید یافت و این کار بر خدا سهل و آسان است پس به خدا و پیامبرش و این نوری که نازل کرده ایم ایمان بیاورید و بدانید که خداوند از عمل با خبر است روزی که همه شما را برای روز گردآوری جمع نماید آن روز روز مقبون شدگی خواهد بود پس کسی که به خدا ایمان بیاورد و عملکرد نیک و شایسته داشته باشد خدا از گناهانش میگذرد و او را به بهشت هایی که نهرها در وارد می نماید تا در آنجا است وارد می‌نماید تا جاودانه در آنجا بماند و این همان پیروزی بزرگ است <متصفيق> و کسانی که نسبت به حقایق کافر شدند و آیات نجات بخش ما را تکذیب کردند آنها اهل آتشند و در آن جاودانه خواهند ماند و چه بد سرندشتیم بدانید که هیچ مصیبتی جز به فرمان خدا به کسی نمیرسد. پس اگر کسی به خدا ایمان بیاورد قلب او را به راه نجات و آرامش هدایت می کند. بدانید که، خداوند بر هر چیزی آگاه است. از خداوند و پیامبر اطاعت کنید و چنانچه روی برگردانید به خود ضرر زدید بدانید که وظیفه پیامبر ما جز یک ابلاغ روشن نیست الله لا اله الا این خداست که جز او معبودی نیست و اهل ایمان بر خداوند تبکل می کنند ای اهل ایمان بعضی از همسران و فرزندانتان دشمنان شمایند از آنها حذر کنید البته چنانچه عفت کنید و گذشت کنید و گناهشان را بپوشانید بدانید که خداوند نیز آمرزنده و با رحمت است بدانید انبال و فرزندان شما وسیله آزمایش شما هستند حالان که پاداش بزرگ نزد خداوند است تا میتوانید حرمت خداوند را نگاه دارید و به حق گوش دهید و از حق اطاعت کنید و در راه خدا به سود خودتان انفاق کنید بدانید هرکس کس از بخلشیش در امان بماند بیشک از رستگاران است چنانکه که به خداوند قرزل حسن دهید برایتان دو چندان خواهد کرد و شما را میامر زیرا خداوند بعد شناس و بردبار است او آگاه از نهان آشکار است او قدرتمند و حکیم است. عالم الغيب و العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم راست کرد خدا واندی قاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و علیه و سلم